پسطه های هزار یک شب شب چهلون چون قانم بن ایوب صندوق به خانه برد بگشود و پریپیکر را به در آورد آن ماه روی دید که منزل قانم جایی است خرم و مکانی است نیکو و فرشهای حریر در آنجا گسترده و بقچه بقچه دیباها گذاشته اند. دانست که قانم بازرگان است. چون قانم پسری بود قمر آن نازنین. بدون مفتون گشت و بسته کمند محبتش شد و گفت خوردنی بیاور قانم به بازار رفت بر بریان و حلوه و می و شم و نقل خریده بیاورد دختر چون او را بدید بخندید و در آغوشش گرفته ببوسید و مهربانی کرد پس از آن خوردنی بخوردند و به حدیث گفتن بنشستند. چون هنگام شام شد قانم برخواست و شمها و قندیلها یافروخت مکان روشن شد و نشاتنگیز گشت. در خانه فرو بستند و می بنهادند. قانم قدهی خود بنوشید و قدهی داد. و زیبا سنم نیز قدهی خود نوشیده قدهی به غانم پیمود و با هم ملاعبه میکردند و میخندیدند و قزل همی هم خواندند و تا نزدیک صبح در ایش و نوش بنشستند آنگاه خواب بر ایشان غالب شد هر یک در جای خود بخوسیدند تا اینکه آفتاب برآمد خانم برخواسته به بازار شد و گوشت و شراب و نقل و شم بخرید و به خانه بازگشته با هم بنشستند و خوردنی بخوردند پس از آن به باد گساری و ملاعب مشغول شدند تا اینکه گونهشان سرخ شد و شرم کمتر گردید خانم بن ایوب آرزوی بوسه و خیال هماقوشی کرده گفت ای خاتون اجازت ده که دهان تو را ببوسم شاید آتش دلم فرو نشیند پریروی گفت ای قانم صبر کن که من مست شوم و بیهوشافتم. انگاه آنگاه مرا ببوس تا من ندانم پس آن مهروی سرو قامت بر پای خواست و پاره‌ای از جامه‌های خود کنده با یک پیراهن بلند بنشست قانم را نفس طالب و شهوت غالب گشته گفت ای خاتون شب قدری چنین عزیز و شریف با تو تا روز خفتنم هوس است و که دردانه ای بدین خوبی در شب تار سفتنم حوسه است. ماهروی گفت: «این کار نخواهد شدن از آنکه به بند شلوار من کلمه دشوار اند شکست خاطر شد و به دانسان همی بود تا شب دیگر برآمد قانم برخواسته قندیل ها و شمع ها بیافروخت منزل نشاتنگیز شد قانم به پای آن سنم افتاد و پای او را ببوسید و گفت ای سیمینتن اسیر عشقت را رحمت کن و بر او ببخشای فرشت لقا گفت ای آقای من به خدا سوگند من بر تو عاشقترم و بیش از تو بسته کمند محبت تو هستم ولاکن میدانم که به وصل من نتوانی رسید قانم گفت سبب را بیان کن دخترک گفت به زودی سبب بازگویم که عذر من بپذیری پس از آن لعبت چین خیشتن در آغوش قانم بیانداخت و دستها به گردنش افکنده او را همی بوسید و مهربانی همی کرد و وعده وسالش همی داد تا هنگام خواب رسید. در یک خوابگاه بخفتند و هر وقت قانم آرزوی وصل میکرد کرد دلارام معذرت میخواست. تا یک ماه بدین سان گذشت هر دو را عشق افزون گشت و هیچ کدام را مجال صبر نماند تا اینکه شبی هر دو سرمست به یک خوابگاه اندر بخسبیدند قانم دست به سینه آن سیمین بدن برد و همی مالید تا دست بر شکمش نهاد و از آنجا دست بر ناف او برد در حال گل ازار بیدار گشته بنشست و بند شلوار خیشتن استوار یافت. دوباره به خسبید. قانم را خواب نمیبرد و دست بر تن او برده همی مالید تا دست به بند شلوارش برده قصد گشودنش کرد. زهر جبین بیدار گشته بنشست و قانم نیز در پهلوی او نشسته بود. دخترک قمرسیما گفت چه قصد داری؟ قانم گفت با تو خفتن و تمتع گرفتن هوس دارم. دخترک گفت اکنون راز خیشتن آشکار کنم تا رتبت من بدانی و عذر من بپذیری. در حال دست برده دامن پیراهن بدرید و بند شلوار خیش بگرفت و با قانم گفت این خط که به بند شلوار من نوشتهاند برخان قانم دید که به آب زر نوشتهاند ای پسر ام پیغمبر تو از برای منی و من از برای تو هستم قانم چون آن را بخاند، دستش بلرزیده، با او گفت، حدیث خود بازگو. دختر گفت، من از خاصگان خلیفه هستم و مرا نام قوت القلوب است از پروردگان دارالخلافه ام چون بزرگ شدم، خلیفه حسن خدا من بدید. مرا به کنیزی قبول نمود و به خود کابین کرد و در قصری مرا جای داد و ده تن از کنیزان به خدمت من گماشت و این زیورهای زرین و این عقد مراسع که میبینی به من داد پس از آن خلیفه به شهر دیگر سفر کرد زبید خاتون به کنیزکانی که خدمت گذار من بودند سپرد که چون قوت القلوب به خسبد، پارهی بنگ در بینی او بنهید و یا در شرابش کنید. کنیزان به فرمان سید زبیده بنگ بر من بخوراندند. من از خیش برفتم. سید را خبر کردند. سید زبیده مرا به صندوق اندر کرده، به خاج سرایان فرمان داد که مرا در جایی پنهان کند. ایشان نیز همان شب که تو به فراز درخت بودی صندوق به مقبره آوردند و چنان کردند که دیدی و خدا تو را سبب خلاص من کرده بود که مرا رهاندی و به دین جایم بیاوردی و با من احسان کردی حکایت من این بود اون قانم بن ایوب سخنان بشنید و دانست که قوت القلوب از آن خلیفه است از بیم خلیفه پستر رفت و در گوشه منزل تنها بنشست و خیشتن را ملامت کرده در کار خیشتن به فکرتن اندر بود و در عشق آن لعبت پریروی القلوب گریست قانم را در آغوش کشید و او را همی بوسید ولی قانم دورتر مینشست و او را از خود دور میکرد و هر دو غرق دریای محبت یکدیگر بودند چون روز برآمد قانم برخواسته جامه بپوشید و به عادت هر روز به بازار رفت و خوردنی بخرید و به خانه آورد دید که قوت القلوب گریان است چون قانم را دید از گریستن بازی استاد و تبسم کرد و با قانم گفت این یک ساعت جدای تو مرا سالی نمود چگونه من به دوری تو شکیبا توانم بود سخنان پیش یک سونه برخیز تمت تو از من برگیر قانم گفت، العیاز بالله این کار نخواهد شدن، چگونه سگان بر جای شیران نشینند، چیزی که از آن خلیفه باشد بر من حرام است. پس قانم خیشتن از وی دور همی داشت و در گوشه منزل تنها همی نشست. قوت القلوب را از خودداری قانم عشق افزونتر گشته، برخاسته در پهلوی قانم نشست و ملاعبت آغاز نمود و قده بر وی همی پیمود تا هنگام خواب شد قانم برخاست و دو خوابگاه بگسترد قفت القلوب گفت این خوابگاه دومین از بحر کیست؟ قانم گفت یکی از برای تو و یکی از برای من است پس از این بدین گونه خواهیم خوفت. آنچه که از مال خاجگان باشد مملوکان را حرام است قوت القلوب گفت این سخنان بگذار که از تقدیر سر نتوان پیچید قانم خواهش او نپذیرفت و جداگانه به خسبید قوت القلوب را میل و شوق افزونتر گردید سه ماه بد گذشت آنچه که قوت القلوب نزدیک آمدی قانم دوری کردی و گفتی که خاصه خاجگان مملوکان را حرام است پریروی را مهنت و حزن قالب آمد و اندوهش افزون شد و این ابیات برخاند نه دست با تو در آویختن نه پای گریز نه احتمال فراغ و نه اختیار وصول کمند عشق نبس بود ظلف مفتولت که روی نیز بکردی ز دوستان مفتول اسیر بند قمت را به لطف خیش بخان که گر به عنف برانی کجا رود مغلول قوت القلوب را با قانم بن ایوب کار بدین گونه بود اما سید زبیده چون با قوت القلوب چنان کید باخت از کرده پشیمان شد و حیران همی بود که اگر خلیفه بیاید و از قوت القلوب جویا شود چه جواب گویم عجوزی را نزد خود خواند و راز با او بگفت و از او علاج خواست عجوز گفت ای خاتون نجاری را بخواه و فرمانده که از چوب صورت مرده بسازد و در قصر گوری کنده او را به گور نهند و به گرد آن گور ها و قندیلها بیفروزند و هر که به قصر اندر است سیاه بپوشند و کنیزکان را به فرما مانند ماتم زدگان و سوگواران بنشینند خلیفه چون به قصر درآید و از حادث باز پرسد بگویند که قوت القلوب زندگانی به خلیفه داد و سید زبیده او را در قصر به خاک سپرد چون خلیفه این سخنان بشنود گریان شود و به ماتم داری نشیند و قاریان آورده بران گور بنشاند اگر خیال کند که دخترمم زبیده برور رشک آورده و هلاکش ساخته حکم کند که گور را بشکافند ای خاتون تو بیم مدار که اگر گور بشکافند و آن صورت آدمی را به میان کفنهای حریر یمانی ببینند آرام گیرد و اگر بخواهد کفن از او دور کند تو و دیگران منعش کنید و بگویید که عورت مرده گشادن حرام است چون اینها را بشنود باور کند که او مرده است پس صورت آدمی را باز در گور کند و نیکوییها ها و دلسوزی های تو را شکر گوید و تو خلاص شوی. زبیده کلام عجوز بپسندید و خلعت و مال به عجوز بداد و با او گفت که همین کار بکن عجوز درودگر آورده صورت آدمی بساخت و به نزد سیده آورد و کفنها بر وی پیچید و به گور اندرش کرده ها و قندیل ها در سر گور روشن کرد و فرشها به گرد گور بگسترد و زبید خاتون سیاه پوشید و کنیزکان را به سیاه پوشی فرمان داد و در قصر مشهور شد که قوت القلوب مرده است چندی برین بگذشت که خلیفه از سفر بازگشت و خاطرش به قوت القلوب مشغول بود و به خیال او عشق همی باخت. چون به قصر آمد غلامان و کنیزان را سیاه پوش دید. از سبب حادثه باز پرسید. سبب بیان کردند. فریاد برکشید و از خود برفت. چون به خود آمد از مقبره قوت القلوب باز پرسید زبیده گفت او نزد من بس عزیز بود در قصر به خاکش سپردم خلیفه با لباس سفر به زیارت قبر او رفت دید که فرشها گسترده و شمع‌ها و قندیل ها افروخته اند چون اینها را دید زبیده را سپاس گفت و شکر گذارد ولی در این کار حیران بود گاهی راست میپنداشت و گاهی دروغ مینگاشت چون عشق بر او غالب بود به شکافتن گور فرمان داد چون قبر به شکافتند و صورت آدمی بیرون آوردند خواست که کفن از وی دور کند از خدا حراس کرده گفت تا به گورش بازگرداندند و قاریان حاضر کردند و خود نیز به یک سوی قبر بنشست و همیگریست تا بیهوش شد و تا یک ماه از کنار گور دور نمیشد و پیوسته گریان بود بس به دین رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است